مرحوم علامه مجلسی در بهار میبیسه میگه ابوذر گفت اماره امار یاسر میگه احتیاج به کمک داشتم اومدم تو کوچه‌ای که خانه امیر در اون کوچه بود از علی کمک بگیرم دیدم سلمان پشت در نشسته گفتم سلمان چه می‌کنی؟ گفت از اینجا رد می‌شدم. دیدم در خانه باز و بسته میشود صدا زدم اهل بیت نبوت، دختر رسول خدا، امری دارید فاطمه سلام الله علیها ها فرمودند امروز چند روزه که علی رفته محصول فدک رو جمع کنه به خانه نیامده است من میدانم فقرا فهمیدن که علی میخواد محصول فدک رو به خانه بیاره دورش جمع شدن علی کسی نیست تا یک فقیر باوی چیزی رو به خانه بیاره همه رو به فقرها بخشیده دست خالی میخواد به خونه بیاد روش نمیشه من در رو باز میکنم سر میکشم اگر علی رو در کوچه دیدم به استقبال علی برم سلمان میگه اینو فاطمه فرمود من پشت در نشستم که اگر علی اومد ورود علی رو به منزل شاهد باشم قروه بود دیدم علی از راه رسید دستشم خالیه گفتم آقا اجازه میدیم من با شما وارد بشم فرمود بیا سلمانون من وقتی وارد شد فاطمه به استقبال علی آمد حالا فدک مال فاطمه است فاطمه در خونه چه وضعی داشته؟ از ادامه این مسئله معلوم میشه که سه روز غزام نخورده وقتی علی وارد شد فاطمه به استقبال علی آمد علی پرسید فاطمه جان چیزی برای خوردن در منزل داری؟ فاطمه عرض کرد نه یا علی جان سه روزه که من خودمم چیزی نخوردم علی سر رو به پایین انداخت فاطمه به نوازش علی مشغول شد علی جان اگر فدک مال من بود در راه خدا بخشیدی من همراه تو هستم تو تشخیص دادی من در مقابل حرفی ندارم علی اومد بیرون که چیزی تحییر کنه برای بچه هاش بیرون کسی که جز خدا براش هیچی مطرح نیست اون وقت علی در مقابل چه عکس حمل نشون داد اسما میگه وقتی فاطمه سلام الله علیه ها از من خواست که موقع جون دادن فاطمه علی در مسجد باشه علی به مسجد رفت در این فاصله به نظر آمد که فاطمه از دنیا رفته است من دوان دوان وارد مسجد شدم وقتی حال مستره به من و علی در مسجدی حد زد که چه پیش آمده دیدم رنگ چهره علی عوض شد پاهای علی شروع کرد به لرزیدن مدینه رفته اید از مسجد و نبی تا خانه فاطمه راهی نیست اگر اون کوچرم بخواید دور بزنید یه راهی که الان پشت این زریه و بین صفه و زری که از اون پشت راهی هم نیست میگه این یتیکره را, را علی چند بار نشست و بلند شد و یکی دو بار هم با صورت به زمین خورد و علی گفتیم علی جون آخه شما این جنگی نلرزیده این چه وضعیه که دارید فرمود اسما دست از دلم بردار ستون زندگی هم از من گرفته می شود رکن زندگی هم از من گرفته می شود انسانی که برای خدا زندگی می کند برای علی که جز حق هیچی متره نیست فاطمه رکن است. لذا چه زیبا شاعر دری زمین سروده زبان حال امیر المؤمنین علیه السلام رو بعد از شهادت فاطمه شاید شبها این باشد قنچه نورسته ما را چیدن صفره زندگی هم برچیدن شب که تاریک شود محفل من عوض شام بسوزد دل من حال بیمونه و یارم چه کنم افتاده به کارم چه کنم گره زندگی امیر المؤمنین فقدان فاطمه زهرا سلام الله علیه سلام الله علیك یا فاطمه